چرا اینجا آسمان قرمز است؟ آسمان شبهای اهواز گاهی قرمز است این رنگی قرمز به خاطر شعله چاهای نفت است بله راهنمای تور هم گفت استان خوزستان چاهای نفت بسیاری دارد قدیمی ترین چاهای نفت ایران در خوزستان است پس ایران نفت بسیاری از این استان صادر می کند. بله، در بیشتر نقاط این استان چاه نفت وجود دارد. درآمد اصلی ایران از فروش نفت است، درست است؟ بله، اما ایران کالاهای دیگری هم صادر می کند. چه رود بزرگی. این همان رود کارون است؟ بله، اینجا رود کارون است. کارون از وسط شهر اهواز می‌گذرد. فکر نمی‌کردم رود کارون اینقدر بزرگ باشد. کارون بزرگترین رود ایران است. بعضی از کشتیها می می‌توانند در این رود رفت و آمد کنند. این چه پل زیبایی است. دوست دارم روی آن پیاده قدم بزنم.